به نام خداوند جان و خرد کدیم برتر اندیشه برنگذرد السلام علیک یا سار الله. سلام ارز میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز راژیو فرهنگ برانی که میشنوید پنجره های روبه محتاب هست من حمید رضا هدایتی راد هستم با آقای دکتر فریدون جنیدی میهمان عزیز ما هستند سلام آقای دکتر شب شما گروه بر شما پدرام زیبید ما در دارد که برنامه رو شروع کنیم من فوراً تلفن های برنامه رو ممکنه فراموش کنم در گفته بو های برنامه 220-4185 85 220 588 220-588-2-0 220-588-2-0 و شماره پیامک سی هزار 558. از نگاه آقای دکتر متوجه شدم تند خوندم یک بار دیگه ارد میکنم خدمتتون دویست و بیست چهار سد هشتاد و پنج این شماره اول ما هست شماره تلفون دوم ما دویست و بیست پان و هشتاد و هشت دو سفر این تلفون دوم هست و پیامک سی هزار پان و پنجا و هشت پایگاه تلارسانی ما www.radiofahang.ir شما از طریق هم روی محواره هات برد. اگر از این که کشور هستن میتونید بهشون بفرمایید که برنامه ما رو برنامه شبکه فرهنگ رو بشنوند تو بخش محواره ها بخش رادیو ها رادیو فرهنگ رو پیدا کنند حتما برنامه های ما رو میتونن بشنوند در اینجا من این ایام رو ای ایام سوگاری آقای ما حسین علیه السلام و یاران گرامیشون رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت هرز کنم در همون آغاز بگم بازم داشتی یادم میرفت هفته پیش یادمون رفت اما این هفته من نوشتم که یادم باشه ما صفحه چند هست استاد سی صفحه سی دفتر دوم دفتر دوم پادشاهی کیخسرو ادامه داستان جنگ ایران و توران درست هرز میکنم بفرمای دکتر با یک عنوان قدید دردآور آغاز میشه گریختن ایران سپاه از پیران ویسه بله چو سر از کوه تابند شید برآمد سر تاجر روز سپید سپاه پراکنده گرد آمدند، همه هر کسی داستان ها زدند. داستان زدن همونی که بعدا به عربی ترجمه شد که ضرور ما گفت. یعنی یاد از گذاشی کردن برای عبرت آینده. اگر جنگ فر... برای شاه... بر شاه باید شدن گمان ببینیم تا بر چه گردد زمان. اگر جنگ فرمانده از شهریار بسازه یکی لشکر نامدار، بیاییم دلها پر از کین و جنگ کنیم این جهان بر بدندیش تنگ. بر این رایزان مرز گشتند باز، همه دل پر از خون و جان پرگدازند. چنان شهرم یه نزد شاه آمدند، خسته بود پرگناه آمدند. سپه رو همه خار کرد و براندن کی خوز رو همی خون به رخ برفشان بزرگان ایران به موافق شدند پر از درد نزدیک رستم شدند این صفحاتی که شما دارید با این تعداد این هم گذاشتید اینا افسوده ها, ها... بله میبینید که شما ما این ابیاتی که میخونم به هم پیوسته همه بین این ابیات به هم پیوسته داستانه های دروز گفترهاینا آوردن برای این که شانومه را در حقیقت بیشتر کنم عبیات رو و در میان نام نابواره که محمود رو هم این کار افزاندگان درباره بار قضنوی در اونطور که من در شما رو بردم متعلق زمان مدود میشه یعنی ثبومین امیر قضنوی این کار زشت کردم کردن اما خب باز یک جای سپاسش باقیه اون که از شانومه بیتی رو کم نکردم بلکه اینو نظر به شما رو بیتا داشتم در صحت و سر شانومه بیش از دو سه که پیوند از هم میگوسالت و نشانه از اینی که یک یا دو بیت کم شده ولی کلان از شوانمه بیتی زیاد به اون ترتیب کم نشده فقط افزودهن بیاری یزدان ما این افزوده رو همراه رو نشورد هیچ متوجه نمشید اگه این صدای سفر رو نشنویم مگر ما شما رو نبینیم صدای سفر رو نشه متوجه نمیشیم افسوده، این افسوده ها اومده بله کتوره قشنگ اومدن اینا حالا جا دادن این افسوده نه، ها نه قشنگ نیمدن خب سخن فیدوسی زیبا بوده اونا خیلی جا ها و بد همه و خیلی خیلی بد و ناجوره ولی خوب دیگه بالاخره وقتی که من برنگیخت شدم برای این کار تصمیم گرفتم گفتم باید برای این کار جانفشانی کرد باید این در حقیقت البموس تراشیده فرهنگ جهان رو بود از این آلوزی که پاک کرد و این بالاخر کوشش به و در تمام اینها من در زمینه شرح دادن به چه دلیل بجه بعضی اویات هست که پنج دلیل داره که به این پنج دلیل از آن فردوسی نیست یا از آن شاهنامه ای ایران نیست بعضی از اویات یک دلیل داره همون یک دلیلم هم در درشت میبینید که اینا افسوده هستید اگه اجازه بیدید میدید یه سؤال بازم برای من پیش میاد بازم شاید بارها این سوال رو من سوزورتون پرسیدم اما این بار برای من حاضر شکل دیگه ای که این عبیات وقتی اضافه شده فقط باید از طرق که شما رفتید پیدا کنیم که این عبیات اضافه است وگرنه همون به سلابل حاضر شعریش ترکیبش دست نخورده یا نه به چه صورت هستش آقا اون کسایی که مثلا نمیدونن اطلاعاتی ندارن میتونن این کار رو بکنن بزید. و چی رو اضافه کردن اصلا؟ هیچ داستان های نادرخور دروخ. این سخنان زشت شاخ و برگ شاخ و برگ نابجا به بله. جا و خب شانومه ها از زمانی که این دست بهش دادن تا کنون شانومه های بسیار نوشه شده و بله خب کسانی هم زمان رو سر یعنی ویراشی چه از کنم گردابری از اینها تشخیص دادن که بعضی از عبیات افزود است که بردن زیر دیگه اونها خیلی نابهنجار بود اون عبیات مثلا در کار خالق مطلق بارها گفته که این عبیات افزود شده در کار گردابرندگان شانون موسخو افزودها رو بردن به پایان کتاب اما من نه من هیچ کدوم از این خرار نکردم من افزودها رو همونجا چاپ کردم منطبه با حروف ر بس شما حالا وقتی که میبینید که من دوست برک میزنم یعنی چهار صفحه چهار صفحه نمیخونم این بیتی که اکنون میخونم با بیت چهار صفه پیش به هم دیگه پیوند داره یعنی نشون بود این گفتار فردوسیس و بینش دیگه اینا رو بودن بخارم بخارمید ببخارم پر از دردنزی که رستم شدن به پوزیش که این بودنی ای کار بود. یعنی این تقدیر بود کرا بود آهنگ رزم فرود؟ یعنی ما نمیخواستیم که این کارمون با رزم فرود آغاز بشه تو همین الانلا تاثیر دارید میکن یه چیزایی رو بالاخره اینها آینده باید چاپ بشه یکیکی وییرگول گذاری های سیزار باجم رو راحت میکنن باید بدونیم که این کار خیلی خیلی خیلی خیلی دشوارتر از رفتن لبوز کوه بوده او خیلی دشوارتر از رفتن حمالی هیمالیا بوده سی سال شبان روز من در اندیشه بودم و در تکو بودم و در گور م بودم که این کار کردم حالا بعضی از این الان نشان گذاری یعنی یرگولار اونا اون وقت انجام ندادم حالا که دارم می خونم مجدن اینا را در نظر میگیرم که مانده ن سر چاپ انت در نظر گرفت مانده نباش به, چیز به چیزی هم رسیدید حالا تهی ته این برنامه ما این نو... ما بیشتر ده ماه ما داریم صحبت می به چی هم مطلب جدیدی هم رسیدید که در برنامه ما اتفاق افتاده باشه شما مطلب رسید مثلا یه حاشیه ای نوشته هااشه اضافه بکنید می‌بینید که الان من برای نخستین بار در خط فارسی این پلامات پرسش رو جلوی کی یا چه میذارم در حالی که یا چرا؟ در حالی که اینطوری رسم است که دمله که تموم شد بعدا علامت سوال می زارم. خب الان من می خونم که بود ها هنگ رزم فرود این که باید جلو که بیاد این علامات پرسش با جلو که بیاد که, که؟ مثلا الان همین کار کردم که رو از جلو را بود آوردم جلو که علامات پرسش رو آوردم جلو که گذاشتم این بیرگو ها این کار ها می دیگه روی هم رفته در این سه سالی که کار پیرایش من تموم شده باز به عبیاتی برخوردم که هنوز اونا هم افسوده بوده که در پیرایش های پیشین بهش توجه نکرده بودم. خواهی نخواهی یک کار بسیار بزرگ ممکنه که گاهگاه یک نکاتی هم پیدا بشه که نکات اشتباه باشه. و انسان باید اینو بپذیره. یعنی فکر من نباید فکر کنم که حرکتم درست بی تردید بی هیچ رنگ و ایستایی بدون هیچ گمان ماننده حرکت خورشید جهان تابه که درست سر زمان بهار رو میاره درست سر زمان پاییز رو میاره نه بالاخره این انسان ممکنه که اشتباهاتی کرده باشه این اشتباهات رو البته در پایان که من از خیرمندان ایران تقاضا کردم که یک همچین اشتباهاتی دی پری روز از شهرستان شاهی از یک روستای به نام برنت از من سهال کردم درباره نام و بعد در حدود دو صفحه آچار ایرادات ای ای ای چاپی که در پیش گفتار بوده برای من نوشته البته این ارادت ای ای ای چاپی رو بعضی خود من هم دیده بودم ولی با این حال من سپاس اوزارم که ارادت چاپی اون متوجه شده برای من نوشته. کور. ما همیشه اونامیکی خودتون رو بر دراش کردید. درود چپی از نظر از اینکه که مثلا الان سوال کجا بود؟ ویرگور کجا بوده؟ یه وقتی ب افتاده یه وقتی ر افتاده. نظر خود شده. البته ممکنه بعد از اینو درست بشه، بعد از اینها هم نادرست باشه ولی خوب بالاخره من سپاسگزارم از اون شخصانا. و یه فرزندی دارم بسیار فرزانه بنام علی زاهدی که در این کارها به با من یاری می‌کنه. من این کار رو به پایان رسیده. بابازم سوال من نمیذارم شما با تمام اشتیاقی که دوست دارم بشنوم ادامه داستان جنگ ایران و تورانو به راز و رمز‌های هم رسیدید به تازگی در دل شاهنامه. با در برنامه ما یا در برنامه ما اگر این داستان‌ها رو خاندید برای ما گفتید به مطلب جدیدی هم رسیده باشید. راز و رمز رو من 3 صد پیش پیش رسیدم بودم. بهموری که من آه. کتاب زندگی به ماجد آویایان رو آهی آهی نوشته بودم. من 300 یک سال پیش این کارو کردم. و خب بلاخره کار ادامه دادم یک سال. در بعض از این برنامه هم بعض از این رازها ش شبافتم خودتون دیدید مثلا این دیوان مازندران مز... یعنی دقیقه دوین ها یعنی بلندی ها و بعد راه درست میکنن سنگار میشکنن به راه میریزن اصلا چیزی غیر راه کشیدن و رفتن به این ارتفاعات نبوده دوین ها هم ها یعنی های یعنی بلندی ها ولی این کارها رو کردم دیگه حالا ح بیشتر این علاماتی که می‌ذارم همین در حقیقت همین ویرگول و کاما و علامت سوال و اینجا چیزاست که اینجا مستدل می‌سنه ببخشید. باز هم اثر می‌کنه. از درد نزدیکی رستم شدن بعد از چهار صفحه به فوزش که این بودنی کار بود ببینید چقدر هم پیوسته است. که را بود آهنگ رزم فرود بدون که کجا کشش شد بود و توس سره سرکشان خیره گشت از حصوص. چوشد روی گیتیز خورشید زرد به خم اندر آمد شب لاجورد ورد. تن, تن بیامد به نزید کشا. بر خروش از در بارگاه. خروش از در بارگاه در اونجا یعنی در خروش برمیدون فریاد بکشتن که جهان پهلمان آمده. چون گفت مرشاه رو پیلتن که باد و سرت برتر از انجامم. به خواهشگری آمدم نزد شا همان از پی توس و بحر سپا. بدو گفت خسرو که ای پهلوان دلم پرز مار شد سانجوا. کنون پند تو داروی جان بابد. اگر چه دل از درد پیچان بابد؟ به پوزش بیامد سبهدار توس. پس از اینکه که خواهشگری رو کرد حالا, حالا توس میاد. به پوزش بیامد سپهدار توس به پیش سپهدار زمین داد بوس بسی آفرین کرد و شهر یار کنوشه بزی تا بود روزگار ورانوشه یعنی جاویدان این باجه در عوستا بوده اوشه اوشه یعنی مرگ با پیشوند ا که یک منوند نونم میگید چون دوتا اه هستیم میشه بگیم ا اوشه میشه اناوشه می نون میاد اینجا یعنی بی مرگ اوشه این واژه در زبان پهلوی به گونه انوشک در میاد و در زبان فارسی به عنوان انوشه انوشه یعنی بیمرگ از اون طرف واژه اوشه به پهلوی میاد به صورت هوش و در زبان فارسی به صورت هوشه هوش یعنی مرگ این واژه که با ویر همراه میشه این هوشه همانطور که ما در واژه هوشیار داریم هنوز ما رو درست میگیم خوشیار اما وقتی که به تنهایی بگیم میگیم هوش و نمیدونیم هوش در زبان فارسی یعنی مرگ و راه هوش در زابلستان بود به دست گل گلپور درستان بود در مثلا دستان رستم میسن میگم مرگش در زابلستانه یعنی میگیم باهوش یعنی با مرگ با این با که باهوش باهوش بله در خراسان هوش گفته میشه هوش یعنی همین هوش رافزه بود اهریاب گوش یعنی مرگ که ریشش اغوش ای بود بسی آفرین کرد بر شهریار کنوشه بزی تا بود روزگار زمین بنده تا رو تخت تو باد. فلک مایه فروبخت تو تباد. منم دل پر از غمز کرد آرخیش جگر خسته از درد و تیم آرخیش همون نیز جانم پر از شرم شاه، زبان پر پرز پوشه، پوزش روان پر گناه، کیز جان فرود و زرسب همی برفروزم فروزم چه آزرگوشست یعنی آتیش میگیره دلم. منتها بزرگترین آتیش ها، آتش ها در آزرگوشست آزربایجان بوده، این میخواد تشبیه کنه که جانم خیلی آتیش گرفته، هم پسرم مرده هم فرود. اگر من گنه کارم از انجامن، همی پیچم از کرده خیشتم. اگر شا خوش گردد زمن، از, از این نامور بی گناه شوم شبم کین این ننگ باز آورم سر پست را برفراز آورم چه گفتار او شاد شد شعریار، دلش تازه شد چون در بهار چو تاج خوره روشن آمد پدید، سپیده زخم کمان بردمید، سفهبت بی آمد به نزدیک شاه و با او بزرگان ایران سپاه. به دیشان چنین گفت شاه جهان که هرگز پیه کین نماند دهان. این چیزی که, خس... که خسرو پا می روی کین از ایران یعنی از ایرانیان، از ایران همه دشت تورانیان سر و دست و پای از تو پشت و میان. شما رو همه شادمانی است را به کینه نجون باد همه دلزجای تهران دل همه دست کرده به کش به پیش جاندار و خورشید فش کش یعنی زیر بغل اون وقت در حضور شاه میشدن دستشون رو دست زیر زیر بغل می این دست بسینه زیر کش زیر کش به کش این کشا روز یک کشاله باغموندو دار کشاله راند باغموندو ولی کشاله دست نمیگم اون وقت بعد کم, کم دست اومد رو، اومد روی بازو. این در، یعنی در حضور تو دست بسته هستیم نمیهر چی که تو بفرماییم. دل ایران همه دست کرده به به پیک جهاندار خوشید. فش که ایشاه نیکختر شیر دل. به زی شیران به شمشیر دل. اگر جنگ فرمانده شهر یار همه سرفشانیم در کارزار. سپهدار پس گیف را پیش خواند یعنی که خسرو گیف که آورنده یه مرد که خسرو بوده از توران سپهدار پس گیف را پیش خواند به تخت گرانمایگان برنشاند به دو گفت که در جهان رنج من تو بردی و بیبهری از گنج من نباید که بیرای تو پیل و کوس سوی جنگ را آمد سبهدار توست یعنی حتما با تو باید رایزه کنه در کارها درم دادو روزی دهان را رو بخوند بسی با سپهبد بد براند از اختر یکی روز فرخ بجوست که بیرون شدن را تیاید درست این میبینید که روز فرخ جسته ولی در همین جنگم باز در آغاز شکست بایرانه با یعنی گفتار اخترماران و پیشگویان و رمالان و جادوگران اینا همه یعنی نه بر خرده نه به پیروی از خرده نه بعد اینا گوش کرد هر کدوم از این کارا که انجام میگیره و اینا در دستگاه ها مکان و منزلت دارن و پور میگیرن و حقوق میگیرن و چه اینو برای که پیشگویی بکنن اینا همه یک در حقیقت یک گونه ای از خام کردن مردمه همین روز فروخ رو جستن ولی باز شکست البته پس میدم که پس از اون رفرستان اومد در جنگ به پیروزی انجامید ولی در آغاز با شکست بود با ایرانیان بود بنابراین این ببین که رغم اینکه گفته رمالا و جادوگرانو گفته اینا رو باید گذاشت کنار خیرت رو سر مایه کار بکنید من مخصوصا به جوانان به ویژه به دختران ایران و دختران فرانه میگم که دل ندیدین این رمالون و نمیدونم فال قهوه و فال برق و, چه و چه اینا نکنید این کار رو. با خرای خودتون در جهان پیش برید بدونید که پیروز هستید خوب هیونی به کردار باد دمان بشد نزد پیران همان در زمان که من جنگ را گردن افراخته سوی رود شهر آمادم ساخته خلاف کاری که پیران در جنگ گلشت کرد و که شبیه خون کرد این داره آگاهی میدی که من دارم بل جنگ میام. اینا نشانه جوان مردی و عیاری ایرانیانه عجری رو با امروز با عین می‌رسیم تصور داریم که این یک واژه غیر ایرانیه. نه این واژه در ار... در بود اری اری یعنی یاری و بدل قابل تبدیل به یه هست مثل واژه پیر و پدر بعد این دال تبدیل به یه شده شده ایاری یعنی دو تشکیل گرفته شده عیاری بعد که ما خودمونو باختیم این عجری رو با عین نوشیم گمان بردیم عربیه در حالی که ریشه عربی نداره ایرو اصلا مستعیر هیچ دیش عربی من ببین یعنی یار گروه یارانی بودن اینا که بر بنیاد های درست جوان مردی کار میکردن این یکی از نمونه هاشه اونا خون زدن و ایرانیان رو تو در حال خواب گرفتن و کشتن اینا روز آگاهی میدن که ما اومدیم بله خب پرمکان هستش یه فرصتی من حواسم نیست که صحبتو مطلب جدی هست و شیوا با شما مرتون من دارم که الان که عرض میکنم، خدمتون یه سوال خیلی حالا پاسخش نمی‌کنم خیلی باید, میکنم باید. طولانی باشه و پاسخ کوتاه نداره به نظر من البته عرض می‌کنم خدمتون و اون این هستش که سلام بسوندن خدمت شما، درود بر استاد عزیز آقای دکتر جنیدی میخواستم از مفاهیم فلسفی شاهنامه بدانم اگر منبعی در این موضوع وجود دارد معرفی با سپاس شیخ از تهران درود بر شما واجه فلسفه برگرفته از واجه فلسفی یونانیه و یعنی فیلوسفی یعنی دوستار دانشی بعد وقتی که متون یونانی ترجمه شد به وسیله ایرانیان به فارسی ازش مستر گرفتن فلسفه و بعد تفسیفم ساختم و این به نظر من این فلسفه را یکی از تیر ترین روزگار فرهنگی جهانی که در یونان پایه و مایه گرفت همه دروغ، همه بوتان، همه خواب، همه خیال من باره که این افثانه هایی که به عنوان در حقیقت اساتی میگن و باید دنبال فلسفه رفتن به خواب یک دیوانه مست میمونه و اون البته در اون زمان یک عدیه بودن که آزاد بودن در سالونها در شهرها در میدان‌ها با هم صحبت بکنن ولی همونا هر کدوم هزار تا پونست تا تا هزار نفر برده داشتن که هر آن میتونستن اون رو بکشن شهروندی و تمدن به معنی آزادی همون اشخاصی بود که برده دار بودن برده ها جونشون همواره در خطر بود حتی حق ازدباهش با همه نداشتن. در یک چنین زمانی یک چیزی به نام فلسفه پیدا شد در یونان که بعدا اروپا اون رو گرفت و شاخو دادن یک چیزی به نام تمدن که ما براوال اینا فرهنگ داریم نه فلسفه نه تمدن تمدن این شهریگری شما میرید توی دوستای پیرمردی رو در کنار جوبه آب میبینید انتیشی بلند تاپناک با فرهنگ ایرانی داره صحبت میکنه. تمدن یا نیچی؟ و اینها در حقیقت رهاورد اون دوران سیاه یونان باستانه. و یکی از فیلسوفان اروپایی، یک سخنی گفته خیلی زیبا. میگوید که فلسفه عبارت از اینی که دنبال در یک اتاق تاریک مطلق تو میدونه که تاریک مطلق نمیشه از نظر فیزیک. بالاخره خودینه خود مدتی بمونه بازمان من انرژی کمی نور میده. حالا این گفته در یک اتاق تاریک مطلق دنبال گربه سیاهی بگردید که اون گربه سیاه وجود نداشته باشه. اون وقت آیا این در شأن آینه تمام نمای فرهنگ ایرانه نه همش فرهنگه. در شأنم هر چیز فرهنگ و خرابه. و وسط را باید ترمین پیدا کنیم. میبینید مثلا الان همین چیزی که الان گفتم اونا شب اومدن به زیر سر مست بالین نرم زبر گرز و کوپال و شمشیره کرد زادن کشتن که بعدن میبینیم فریبوز گفت که شبیه خون نسازن جنگ آوران کسی کوپ گراویت به گرزگران میدونید برای چی گرد به گرزگران رو میگه این گرزگران در حقیقت در سرخونه ها همون میلیه که میچرخونن و این ورزشی شیش سال است از هنگامی که ایرونیون خودشون در ها آماده می‌کردن برای نبرد با بابلیان و زهاک که به به آیین کیش مهر انجامید و ضمناً به پادشاهی فریدون یعنی یک کسی که ورزشکار هست، جوان مرد عیار هست، تو گود سرخونه ورزش کرده، خاک گود سرخونه رو بوسیده، این کس نباید شاهی بکنه. اینا اینا مسائلیه که از اینجا در میاد اگر با این دیدگاه نگاه کنیم بله. هر از برمیاد فرهنگ و خرد و مردمی و سالاریه گفتن منابع معرفی به فرهنگ من منبع شانومه برمیاد من خیلی آدم بدیم هایی دوش بیست و هشت دقیقه شما داری تحبت میکنید باورد فرمید پیامک ها زیاد خستش من من مشتاق من رو بده به من, من. میدونم شما خسته نمیشید منم شوق شنیدن دارم ب ببخشید. ببخشید. ببخشید من سوال بعدیرم بپرسم که پرسیدند که چرا بیشتر تاریخ نویسان همچنین فردوسی بزرگ اینقدر به تاریخ درخشان مااد بی توجه بودند با سپاس فراوان شاهپور صحایی شاپور صحرایی از کرماشان درود به کرمشان و سرای اطراف کرمشان و کوهستاناش و به شاپور. شما از کجا فهمیدید که شاهنامه نصاب به... به... پادشایی ماد بیعتنا بوده. این است که اروپایی ها چون ندانستند گفتن که به ماد نصاب ماد و به خصوص به حقامانشیان بیعتنا بوده. من بارها در باره حقامانشیان گفتم بله. بیاندازون هست که دارا دارایان. بله. پیشتر از اون حکومت ماده در... خیلی هم به خوبی ازش یاد شده خیلی خیلی به خوبی ازش یاد شده ازید این کتاب داستان ایران من بیاد بیرون خواهید دید که با رمزه که من نگوشم اون رو خیلی. درست آدرس صحیح و نشانه درست حکومت ما در سرزمین ما نه چنین نیست که این یاد این کتاب شما که ما مشتاقیم قدیم گفتم وقت گل نگیم من کار خودم رو کردم وقتی برفتار مسائل صفحبان چون کار خیلی کار مهمیه از در چاپم که رفتاری داره بعد هم که وقتی که حاضر شد باید وزده اشار دادیم یک مدتی هم, می... هم بعد برای در بررسی بشه زمانی میخواد من خودم امید دارم برای نوروز برسه ولی اگر نشد برای با امید یزان برای نماشو کتاب سالهنده به امید خدا معنی قروه یعنی چی؟ اسم روستاییه وی آخرش به احتمال به معنی نیک باشه و غوره اولیش در گعیری در عویستا احتماله گعیری در عویستا یعنی کوه که این گعیری در پهلوی شد کر و در فارسی شد گر به معنی کوه یعنی کوه نیک و منم بیاد دارم دوران بچگی که همواره به نقشه نگاه میکردم به بخش کردستان و آزرباجان عزیز این شهر رو میخوندم گروه من نمی‌رسن که قروح برای چی است بعد اینو فهمیدیم که قرب است معنیش از ظاهر این برمیاد یعنی کوه نیک شما شنونده برنامه پنجره‌های روی مهتاب هستید آقای دکتر فریدون جنیدی برای ما داستان‌های شاهنامه رو می‌خوانند رمزگشایی می‌کنند در بخش خای البته این کار رو کردن در برنامه‌های نخست اما ما از خواهش کردیم هر جا که به مطلبی میرسن برای ما میگویند و تلفن‌های برنامه ما 220 و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست، چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست، و هشتاد و هشت دو دویست و بیست و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پیامک سی هزار پنجصد و و هشت، سی هزار و و هشت هم به خاطر شما شنودههایی از هم به خاطر خودم که بدونم. عزقای دکتر زیاد سوال میکنم <تصفيق> من برای همین اومدن که پرسش شما پاسخ بده منده نموشی من پرسش های جوانان بیداردل ایران رو جانی که وقت ایران و فرنگ ایران و جوانان ایران هست اون پیکری که خاک زیر پای جوانان آینده ایران میشه همواره آمادگی داره که به های شما پاسخ بده خدا عمرتون بده دوباره این رو تکرار کنم خیونی به کردار باد دمان بشد من پیران همان در زمان که من جنگ را گردن افراخته سوی رود شهد آمدم ساخته سفهدار پیران یکی چرگوی زلشکر لشکر فرستاد نزدیک اوی البته مثلا همینجا در همه همین نمون مده ز ترکان توران هنوز ترک نشدن تورانیا پسر تور هستن تور پسر فریدونه این هنوز اون کادش استمگین تاریخی یعنی زمین شناسی درخت بده که توران را از بین ببره و اینا ترک نیستن اونطور نویسندگان ناگو همه جور جد، هر جدیشون خواسته توران رو به عنوان تورخان معرفی کردن اما اینجا اینی که زلشکر در چون تو لشکر هستن از لشکر کیسری فرستاد به که من با فرنگیس و شاه چه کردم خوبی به هر جاگاه چه درب سیاوش خروشان بودم بر آتش تیز جوشان بودم. کنون بار تریاک زهر آمده است. مرازان همه رنج بهر آمده است. بیرونی که تریاک یعنی پادزهره، زهره. یعنی دارو که در زمان باستان از او عنوان دارو است و اکنون هم در داروهای پزشکی خیلی خیلی از این استفاده میشه توی چیزهایی که مثلا مسکن درد باشه. خوب حالا اگر این بعدها تبدیل شد به افیون ها به اون کار نداره میگه اون چیزی که باید برای من طریق باشه زهره بجاش دل تو خنگین شد از کار اوی. بپیچید زان خوب گفتها اوی. چون این داد پاسخ که از مهر تو فراوان نشان است بر چهره تو سر آزاد کن دور شو از میان ببندین در بیم و راه زیان مون که راحت کن تو از توران بیا ایران مقصود اینه بل. برای شاه ایران شوی بیسپاه مکافات یابی به نیکی ز شاه چو یادآیدش خوب کردار تو دلش رنجه گردد ز تیمار تو سرایندهٔ پاسخ آمد چو باد به نزدیک پیران ویسه نژاد چنین داد پاسخ که من روز شب به یاد سپهبد گشه هایم یعنی به یاد که خصوص ایران به ایران گذارم بر و بوم و بر میبینید که اینجا بر و بوم و بر ممکن نیست که یعنی میتونه که بر رو یعنی میباها رو بذاره ولی بوم،, بوم رو بوم و بر دو مرتبه تکرار شده نمیتونه حالا من اینجا چیزی که دادم و در حقیقت زیر نمیسی دادم میخونم تا ببینید که کار من چی بوده در همه نمونه ها چنین آمده است اما پیداست که نادرست می نماد تا بوم رو نمیتوان از جایی برداشتان به کشور دیگری بردن بر این بنیاد سخن درست چنین می نماید به توران گذارم برابوم و بوم رخت که در لطه نیست تاجی زر به تاج و تخت برمی کردند متوفر شدید؟ بله یک بار میخونم به ایران گذارم بر و بوم و بر که بر دوبار تکرار شده که نادرسته سر نامور بهتر از تاج زر. حالا اگر اینطور بگیم به, ایران به توران گذارم یعنی اینا رو میذارم اونجا بر و بوم و رخت و همه چیز رو میذارم اینجا در توران می نه در ایران. به توران گذارم بر و بوم و رخت سر نامور بهتر از تاج و تخت. متقابل بله درست برعکس شد افسانده دست بردن افسانده نویسندگان نه دست بردن معنی را واسه کردن چیز دیگه, دیگه بود. بله. بله. به نزی که توس که بربند بر بند بر کوس که پیران ندارد, ندارد سخون جز فرب چدونت که تنگ درآمد نشیب در رفش پیش آمد پدید، یعنی افراسیاب، این افراسیاب بود فرنگ رشاییم، یعنی کسی که همواره در حقه ستم میکنه و کشدار میکنه. این در شانوم بارها به افراسیاب با پاجنوم جفا ازش یاد شده، به همین معنیه. در رفش پیش آمد پدید، سپه بر لب رود برکشید، یعنی سپه توران. بیا راست لشگر سپهدار توس با همون کشیدن پیلان و کورس. ایران توران و گنداوران کشیدند شمشیر رو گرزگران که یک سر بکوشیم و جنگ آوریم جهان بردر توس تنگ آوریم. چون این گفت همون که امروز جنگ نسازیم و دل را نداریم تنگ. گریدون که زیشان یکی نامور لش کرد برقات به به پیکار سر پذیره فلسطین گرددی د ببینیم تا برکه گرد زمان این میدان دو همانوردده در جنگکال باستان به آین بوده که یه پلوان از یک طرف میمده و هم آورد میخواست بود با اونان باید یه پلوانه نود بیشتر از یه پلووان نه. بعد اینا با هم دیگه می چقیدم تا کدومی یکیشون پیروز بشه بعد از پیروزی اون وقت ممکن ممکنه به همبوه حمله بکنه. هومان برادر پیران، برادر دوم پیران این پیشنهاد میکنه. بهدانگه دانگه که لشکر به جنبه زجای طبیره براقایت پرد سرای و انبوه رزمی بسازیم سخت. اگر یار باشد جهاندار و بخت هم خداوند و هم بخت ما. اون چیزی که در حقیقت پیش خواهر ما که به ما باشه. چرخ بلند از شبح تاج کرد شبه سنگ سیاه رنگ یعنی شب شد و شما در اقیقت این گفتارهای فردستی رو این رنگ ها ها و این نقش ها های زیواش رو توجه کنید یک تاجی از سنگ شباه رو سرز کرد. یعنی شب شد چرخ بلند از شبه تاج کرد شمامه پراکند بر لاجورد شمامه گردایی ریز باشه مقصود اینکه روی آسمان لاجوردین شب ها پدیدار شدند کی تونسته به این زیبایی شبر بیان کنه دوباره میخونم که چرخ بلند از شبه تاج کرد شمامه پراکند بر لاجورد تلایز هر سو برون تاختند به هر پرده ای پاسبان ساختند یعنی پرده یعنی چادر البته بعد خیمه چون از از وز با پرده یکیه در بسیار از ها خیمه اون اومده ولی این پرده درسته پرده برای سپایان و پرده سرال برای پادشان و سرداران یعنی پرده سرال بزرگتر از پرده بوده خیمه همون پرده همون پرده است برده چوبار زد سر از برج خرچنگ شید جهان گهش چون روی رومی سپید تبییره برای آمد زهد و, و جهان شد پر از ناوله کرناوی. سر از برج خرچنگ درآورد یعنی تیر ماه. میدونی این وقت جنگ ایرانیان با, با تورانیان بوده. توری باید حرکت کنن که تیر ماه اگر بخوان یعنی در زمان که قطور این تا شد مراتبان میرفتن دیگه. تیر ما، امورداد ماه اونجا باشن اگر اندکی زودتر برم که هوا سرده اندکی که دیرتر برم به سرماه هوایی چگفت مناطق شمالی برخورد بکنن بنابراین باید طوری حرکت کنه که در تیر ماه اونجا باشن و در همینجا در این در تیر ماه حادثهی روخ میده که حالا بعد فرموره خوش خواهیم بود بله. چون برزد سر از برج خرچنگ شید چهانگرش چون روی رومی سفید طبیره برای آمد زهد و سرای جهان شد پر از نوله کردنای به پرده درون شد خوره تابناک یعنی خوشید رفت زیر پرده گرد سپایان ز جوش سواران و از گرد و خاک ز هر رای اسپان و آوای و کوس همی آسمان بر زمین داد بوس هر رای به دو معنیه یکی شعه است یکی صدایی که از در حب برخورد اون برگستوبان و چیزهای فلزی در جنگ پدید میاد و حالا هر رای که وقتی میگه هر دوتا اینا هم در حقیق شهیه و هم صدای اون و اون که از در حقیق جنگ افضارها و شنیده میشه اینجا یکی از اون رمز یکی از اون چیز که گوشاده شد که من برشان میرم هوا تیرگون بود از تیرما همه در همه نصخ آمده تیرما و تیرما به زبان تبری مازندران خودمون الان میگن یعنی پایز. در تاجیکستان هم همه تاجیکستان میگن تیرما تیر یعنی پایز. میبینید این نمیخوره به اون که, که سر از برج خرچنگ شید زده. تیر ماه اینجا تمام نسخه همه بدون استثنا وردن تیر ماه در حال که تیر ماه همی گشت بر کوب و ما یکی در گاه خودمون یه تیرگان داریم ویروس روز تیر باستانی بوده که چون ماهای خیامی 6 ماه اول سییک روزه شد سه روز در این, در این روزگار سه روز بعد جلو کشیده بشه. این روز دهم تیر خیلی میشه و سیزدهم تیر ماه باستانی بوده بلد. و قطعا در این روز بارون میاد یعنی دهشی از اینه ایرانیان این رو میشناخته و در یکی از بخش های زیبای یشت ها میبینیم که با تیریشت مربوط به همین تیر و تیشتر هست می که سخنان بسیار زیبا و تلانگیز و صحن آرایی های خیلی خیلی زیبا از امواج دریای فراخت یعنی اویانوس آرام که ایرانیان رفتن نقشش کشیدن رو میدونستن می اون رو در اون زمان پدید میاد و تیشتر یعنی ستاره باران که بر فراز دریای فراقکت هست این امواژ وجود میاره و بعد سرتا سر دریای فراخت به جوشو خروش میاد و این کف میکنه تبدیل میشه به ابر با آسامون میره و بعد ایز... با زد این عبرها رو به سرزمین های هفت کشور زمین میرسونه س... و در اون سرزمین های هفت کشور زمین دانه های ریز... ریز و دروش تو متوسط میشن از بارون شادمان میشن شادمانی به همه کشور ها میره همه جا مزاره و همه کشتار ها برخوردار میشن از این عبر که برقید تیشتر موجبش بوده و این یک که داستان دانشیست پایه این خست دانش دریافت آبخاست و آبکاسته. من برای جزمت آبخاست و آبکاست پیشنهاد کردم. دوست گرامی ما استاد بربریان گفت بود کشند و واکشند ولی با اینکه من در حقوق جهان و در ایران و باستان این کشند و باکشند و بردن زیر نویست دادم که به نظر آبخاست و آبکاست درست در باشه. یعنی ایرانیان سه هزار سال پیش میدونستن که آب و آب به دلیل جاذبه‌ای است که در ما خورشید دارد.